بذری نه محترم نصیحت منو گوش کنید ای خانوم افت رو بی و بی رو تو چرخه ای اغرب بزن دروش ای جلو برو آی طبقه کنار بیا آی لبویی بزن برو آی ما چه دست آی شو توری مکن هوا قطار کن از رو آی اموجو کنار برو آی خانم از پیادر رو بی پیس بی رو آی خانم از پیاده رو بی پیس بی رو یزیا میگن از همه جا و رو اطراف میدونه سپن تا که چشه کار ماشین ماشین میاد آز, از دو سپن سه مرد زن قیامتن فرک ما کند نزن چوفر بدبخت وقت با این همه بیا برو آی خانم از پیاده رو بی فیس و بی رو کاشونی ها به پاسبان رهن ما از سهری تا نسب شب ایشتاده فرمون میده و به دست راسه به دست شب به ای میگه بزن جلو و او میگه برو اقب افتاده گیر مردم نادون و هفت سرش نشو. آی خانم از رو بی پی و بی افاده رو اسپانیا میگن گردوی نره میکشه آی آقا مشغولیاته توفه شمرونو بخه هرکس صاحب کماله رازنامه داد میزنه کیهان و اطلاعاته به غرکی چاپ الانه بخون از این نو آی خانم من رو بی پیز و بی رو خراسونیا بگم با بچه هاش شبها به لال زار میره یک بچی اش نفله شده تازیگی از کنار میره باش که به میدون میرسه سف میگیره با قطار میره ترسیده چون که جانه بچه خود دیره دادلون آی خانم از یاده رو بی پیس و بی افاده رو رشدی ها میگن رشدستی از عادی مزد خیابونه بوی میزنن یکی میگه پس برا بابا یکی میگه پیش یا نه یکی میگه ساب نشی یکی میگه کم بزن تنه اون که دا سیتایی خورده هی میخوره تلون تلون آی خانه من رو بی پیس بی رو قذبینی ها بگن آی خانومی سر حوال که پره تقصیل ندارد تو از خودت بی خبری زیرد نگیری یک بارد با این همه افیاب بره چه کار این بیچارد خودت کنی به دست خود حاصل عمر خود آی رو آی خانوم من یاد رو بی پی پیس و بی افاده رو شیرازی ها میگن سیکن سیکن حضران اینا بگم که لازمه نه که لازم نداره به ماشینش مراقبت جوپر دایم نداره چون که میبینی تحصیل را ترموز و سالم نداره اینجا که ترموز میکنه صاف میده تو پیاده رو آی خانم هم پیاده رو بی پیس و بی رو قبریزی میگن پندی ره را بشنو همیشه از کناف رو وقتی ایستادی از خطه میختاره برو نه اون که ماشین که جلی سنده بکنی بدو بدو آی خانم از رو بی پیس و بی رو آی خانم از رو بی پیس و بی رو